دارساز و توتی خوشاباز این داستان رو فاطمه قیمتی از کرمانشاه نقل کردن یکی بود یکی نبود غیر از خدای خوب و مهربون هیچ کس نبود پادشاهی بود که سه تا دختر داشت و همیشه ته دلش قصه نداشتن پسر رو میخورد ولی اون رو از دیگران مخفی میکرد روزها پشت سر هم سپری میشد و هرچه میگذشت بیشتر احساس تنهایی میکرد های دور و نزدیک به اون سرکوفت زدن و پسر و جانشین نداشتنش رو به رخش میکشیدن و میگفتند باید فکری برای خودت بکنی پادشاه روزها و شبها دور از چشم خانواده گریه میکرد. بعد از مدتی اونقدر گریه کرد که بینایش را از دست داد و دنیا براش تیره و تار شد. هیچ دکتری دیگه نتونست نابینایی اون رو درمون کنه. یه روز یکی از بزرگا پیش پادشاه اومد و گفت، اگر کسی بره و از خاک سرزمین پشت هفت کوه و هفت دریا که پای هیچ آدمی زادی روی اون نخورده بیاره و به چشم شما بماله چشماتون زود خوب میشه دختر بزرگ که این حرف رو شنید گفت من برای آوردن خاک میرم هرچی به اون گفتن از عهده تو خارجه ولی قبول نکرد دختر گفت نه من از هیچ چیز و هیچ کس نمی ترسم وقتی دختر بزرگ راه افتاد پادشاه به وزیر گفت دنبالش برید طور که شما را نبینه اگه ترسید برش گردونید وگرنه اجازه بدید بره دختر بزرگ اسب رو زین کرد و توشه یه راه و برداشت و راهی سفر شد وزیر هم لباس مبدل پوشید و دنبال دختر را افتاد وقتی دختر از شهر خارج شد، وزیر در قالب یه ناشناس به اون نزدیک شد و گفت شما به چه حقی است به پادشاه رو برداشتید؟ دوست هستید یا راهزن؟ دختر که خیلی ترسیده بود، از ترس از روی اسب روی زمین افتاد. وزیر لباس مبدلش را از تنش در آورد و گفت نه ترسید، من وزیر پدرتون هستم. حالا که ترستون رو به چشم خودم دیدم بهتره با من به قصر برگردین دختر همراه وزیر به قصر برگشت فردای اون روز دختر دوم گفت من میرم و حتما اون خاک رو پیدا میکنم میارم ولی دختر دومم ترسید و اونو به قصر برگردوندم پس از اون دختر کوچیک پادشاه ازمش رو جسم کرد و راهی سفر شد وقتی وزیر سر راهش رو گرفت، دختر به اون گفت شما کار به اسب پادشاه دارید؟ این اسب پدرمه، منم دختر پادشاهم وزیر وقتی که جسارت و شجاعت دختر رو دید لباس رو از تنش در آورد و گفت معلومه که تو نترس و شجاعی و میتونی دوای درد پدرت رو پیدا کنی من وزیر پدرت هم برید به امید خدا که موفق بشین دختر صبح تا شب رفت و رفت و رفت تا به کلبهای رسید که پیرمردی جلوی درش نشسته بود. پیرمرد رو به دختر پادشاه گفت دختر کجا میری؟ دختر گفت میخوام برای شفای چشم پدرم خاکی رو که هیچ آدمی زادی پاروی اون در رو برم و بیارم. پیرمرد گفت امشب رو پیش من بمون و فردا با اسب من برو اسب خودت نمیتونه به تو کمکی بکنه ولی من یه اسب عربی دارم که زبون فهمه و میتونه راهنمای خوبی برای تو باشه اسب خودت رو پیش من بذار و اسب من رو بردار و برو فردای اون روز دختر کوچیک پادشاه سوار اسب پیرمرد شد و راه افتاد رفت و رفت و رفت تا به شهری رسید که پادشاه اون فقط یه دختر داشت. وقتی دختر پادشاه اون رو دید فکر کرد اسب سوار پسره و شیفته اون شد و اونو با خودش به قصر بود. پادشاه که علاقه دخترش رو به اسب سوار دید از اون خواست با دخترش ازدواج کنه. دختر کوچیک پادشاه که این سفر رو به دلیل بیماری چشم پدرش اومده بود سعی کرد ماجره رو به اون بفهمونه ولی اونا اجازه حرف زدن و بهش رو ندادن و از اون خواستن که ساکت باشه و هرچی میگن رو انجام بده پس از عقد دختر موفق شد به دختر پادشاه سرزمین جدید بگه که قضیه از چه قراره پس از هفت شبان روز جشن و سرور دختر پادشاه هم به پدرش گفت که این پسر نیست یا باید اون را از بین ببری یا من خودم رو میکشم پادشاه اون رو صدا کرد و گفت اگه میخوای زنده بمونی باید شرط ما رو انجام بدی دختر اسب سوار گفت چه شرطی؟ پادشاه گفت باید همچنان که سوار بر شیر در ای هستی مشکی همراه داشته باشی که از پوست شیر درست شده باشه و پر از شیر شیرها باشه برام بیاری وگرنه تو رو میکشم دختر پیش اسب عربی اومد و شروع کرد به گریه کردن اسب عربی پرسید چرا گریه میکنی؟ دختر ماجرای شرط پادشاه رو برای اون تعریف کرد و دوباره شروع کرد به زار زار گریه کردن وقتی گریه دختر تموم شد، رو به اسب گفت، حالا چه کار باید بکنیم؟ اسب عربی گفت، به پادشاه بگو اگه خورد و خوراک چهل شبان روزمون رو بدی، شرط شما رو انجام میدیم. دختر پیش پادشاه رفت و حرفهای اسب عربی رو بازگو کرد. پادشاه دستور داد هر چی که دختر میخواد رو براش آماده کنند. توی چشم هم زدن همه خواستهای دختر آماده شد، و اونا رو بار اسب عربی کرد و خودش هم سوار شد و راه افتاد رفتن و رفتن تا به محل شیر رسیدن اسب عربی به دختر گفت چهل روزه که تو اینجا میخی به پای این شیره فرو رفته و خیلی درد میکشه اما حالا خوابش برده برو و با یه انبر رو از پای شیر بیرون بکش و زود فرار کن و جایی مخفی شو شیر که خودش رو خونی ببینه نعره میکشه اما وقتی کف پاش رو لیس بزنه خوشحال میشه و میگه آدمی زاده ای خودت رو نشون بده حالا که میخ رو از پام بیرون آوردی هر چی که بخوای بهت میدم رو نشون بده و خواستت رو بگو دختر یواش یواش سراغ شیر رفت و میخ و انبر به دست نزدیک شیر شد شیر گفت حالا چه میخوای دختر گفت پوست شیر رو میخوام که پر از شیر شیرها باشه و یه شیر برای سوار شدن. شیر گفت برو روی تپه 6 تا بچه شیر اونجاست. بهشون بگو بچه شیرها مادرتون مرده هر کدوم از اونها به طرف من اومدن با اونها باش. ولی هر کدوم فرار کردن بگیرشون و پیش من بیار. دختر رفت روی تپه و 6 تا توله شیر رو پیدا کرد. رو به اونها گفت بچه شیرها مادرتون مرده. با شنیدن حرف دختر سه تا از شیرها پیش مادرشون رفتند و سه تای دیگه پا به فرار گذاشتن. دختر سه توله شیر فراری رو گرفت و پیش شیر برد. شیر مادر سر یکی رو کند و پوستش رو کند و اون رو از شیر خودش پر کرد و دوتای دیگر رو برای سواری دختر و اسب عربی به اونا داد دختر و اسب عربی پس از چهل شبان روز به شهر برگشتند. به پادشاه خبر رسید که دامادت و اسبش سوار بر شیر و با پوست شیری پر از شیر شیر از سفر برگشته پادشاه دستور داد برای خوش اونا هفت شبانه روز جشن و پای کوبی به راه بندازند. بعد از هفت شبانه روز جشن پادشاه به دختر اسب سوار گفت حالا که شرط اول رو انجام دادی، برای زنده موندن باید شرط دوم ما رو هم انجام بدی. دختر پرسید شرط دوم چیه؟ پادشاه گفت؟ باید به دورترین و عمیقترین دریا بری و هشت پای قولپیکری رو برامون بیاری. اگر آوردی نجات پیدا می کنی و اگر نتونی جونت رو از دست میدی. دختر گریه گریکنون پیش اسب عربی رفت و گفت پادشاه از ما خواسته به دورترین و عمیقترین دریای زمین بریم و هشت پای قولپیکر رو بیاریم. اسب عربی گفت ناراحت نباش برو به پادشاه بگو خوراک و خرج چهل شبانه روز و نمد درست شده از پشم چهل شطور به ما بده تا هشت بار رو براش ببریم. دختر پیش پادشاه رفت و خاستش رو گفت. پادشاه دستور داد همه خاسته های دختر رو برآورده کنند. دختر با توشه راه چهل روز سفر و نمد درست شده از پشم چهل شطور شهر رو ترک کرد دختر و اسب عربی رفتن و رفتند تا به دورترین و عمیقترین دریای زمین رسیدند اسب عربی نمد رو به تنش پیچید و به دختر گفت من به دریا میرم تو تا چهل شبانه روز همینجا منتظر من بمون اگه تا اون روز اومدم که هیچ ولی اگر نیومدم پیش پادشاه برگرد و بگو شرط رو نتونستم انجام بدم. اسب عربی وارد دریا شد و زیر آب رفت. یک روز گذشت دو روز گذشت از اسب عربی خبری نشد. یه هفته گذشت و دو هفته گذشت. از اسب عربی خبری نشد. یه ماه گذشت ولی از اسب عربی خبری نشد. سی و هشت روز گذشت سی و نه روز گذشت ولی از اسب عربی خبری نشد. دختر کم کم آماده شد پیش پادشاه بره. بعد از چهل شبان روز آب دریا به تلاتم افتاد. موج روی موج افتاد و اسب عربی در حالی که هشت پای غول پیکر رو به دوش می کشید، از زیر آب بیرون اومد دختر هم با خوشحالی سوار اسب عربی شد و به تاخت به سرزمین پادشاه برگشت دوباره خبر به پادشاه رسید که دامادت هشت پا را آورده پادشاه هم باز دستور داد که هفت شبانه روز جشن و پایکوبی برپا کنند بعد از هفت شبانه روز جشن و پایکوبی دختر پادشاه به اون گفت پدر، این دختر باید از بین بره. پادشاه گفت دخترم شرط دیگه براش میذارم که مطمئنم نمیتونه انجامش بده. این دفعه شرطمون اینه که بره و برامون دار ساز و راز توتی خوشحواز رو بیاره. وقتی دختر شرط پادشاه رو شنید، باز هم گریه کنان پیش اسب عربی رفت. اسب عربی این بار هم از دختر خواست، پیش پادشاه بره و توشه چهل شبان روز رو بگیره. وقتی دختر با توشه راه چهل شبان روز پیش اسب عربی برگشت، اسب عربی گفت، اگه بخت پدر دیار باشه، این بار موفق خواهی شد که برای پدرت از خاکی که پای هیچ آدمی زادی بهش نرسیده بیاری اونا رفتن و رفتن تا به محل دارساز و توتی خوشآواز رسیدند. رسیدن جاهایی که پای هیچ آدمی زادی به اونجا نرسیده بود وقتی به اونجا رسیدن از گفت الان وقت خوابه از اینجا که میری سر راه یه سگ میبینی که یه سبد کاه جلوشه و یه گاو میبینی که یه سبد استخون جلوشه. جای سبد کاه و استخون رو با هم عوض کن. سبد کاه رو جلوی گاو بذار و سبد استخون رو جلوی سگ. بعد یه فرش میبینی که توی آفتابه و یه فرش دیگه توی سایه. جای اونا رو هم عوض کن. بعد به یه دریاچه میرسی که دیوها بهش میگن چشمه چرک و خون ولی شما بگو ای چشمه آب روون به آخر راه که رسیدی اگه دیوها خواب باشن دارساز و راز توتی خوش آواز و یک مشت خاک هم برای چشم پدرت بردار و فرار کن بیش من دختر قبول کرد و از راهی که از عربی نشونش داده بود را افتاد اون رفت و رفت به سگ و گاو رسید سبد استخون رو جلوی سگ و سبد کاه رو جلوی گاو گذاشت دوباره رفت و رفت تا اینکه به دو تا فرش رسید و جای اونا رو با هم عوض کرد باز هم رفت و رفت تا به رودخونه رسید و به رودخونه گفت ای چشمه آب روون دوباره رفت و رفت تا به دارساز و توتی خوشآواز رسید اونا رو برداشت و یک مشت خاک هم از روی زمین برداشت و فرار کرد وقتی که داشت فرار می کرد دیوها از خواب بیدار شدن و به سگ گفتن آهای سک بگیرش سگ در حالی که استخون رو لیس میزد گفت من چند سال یه سبد کاه جلون بوده و اون برام یه سبت استخون گذاشت چرا بگیرمش؟ دیوها به گاو گفتن آهای گاو بگیرش گاو گفت چرا بگیرمش چند سال که یه سبت استخون جلون بوده اون به من یه سبت کاه داد به قالیچه گفتن بگیرش اونم گفت چند سال یکی از ما نور خورشید رو ندیده و یکی دیگه سایه رو ندیده حالا که به آرزمون رسیدیم هرگز چنین کاری نمی‌کنیم دیوها به چشمه التماس کردن ای چشمه چرک و خون التماس می‌کنیم بگیرش چشمه هم گفت شما سال هاست به من میگین چشمه چرک و خون ولی اون به من میگه چشمه آب روون چرا بگیرمش دختر دوان دوان پیش اسب عربی برگشت و اسب که برای فرار آماده بود دختر را رو روی دوشش سوار کرد و چهار نل سمت قصر پادشاه تاخت. وقتی نزدیکی‌های قصر رسیدن به پادشاه خبر دادند که دامادت سلامت برگشته و دارساز و راز توتی خوشآواز رو به همراهش آورده. پادشاه باز دستور داد سراسر شهر را چراغونی کنند و هفت شبانه رود جشن و پایکوبی به راه بندازند. بعد از جشن و پایکوبی، پادشاه به دختر اجازه داد به دیار خودش بره، به شرط اینکه هیچ وقت این طرفا آفتابی نشه. دختر کوچکتر با خوشحالی سوار اسب عربی به طرف قصر و سرزمین خودش را افتاد وقتی به شهر رسید دید تمام شهر سیاپوش شده. پرس و جو کرد جواب شنید دختر پادشاه واسه معالجه به دیاری دور رفته و برنگشته. دختر گفت برید به پدرم خبر بدید که دخترت صحیح و سالم رسیده و خاک رو هم برای چشمای تو آورده. مردم ترسیدن و گفتن اگر بریم پیش پادشاه دستور کشتنمون رو میده. دختر گفت این تیکه از لباس من رو ببرید و به پدرم بدید. مطمئن باشید بهتون مجدگونی هم میده. خبر به گوش پادشاه رسید و اون دستور داد رخت سیاه رو از تن شهر بیرون بیارن و شهر رو چراغونی کنند و به جشن و پایکوبی مشغول بشن. دختر پیش پدرش رفت و از اون خاک به چشم پدرش مالید. پادشا چشماش رو دوباره به دست آورد و تونست زیبایی‌های دنیا رو ببینه. اونا سال‌های سال در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کردند.